باسرين حوري خلينا نكتب قران بنيو حكمتك اني نسنده كتابي مجاور من جمر نسيني حجر الكرياني علي مارکردنی کردنی دلیر سلیم. گگرانی عزیز و خوشوی سلاوتن و شوتن شد خوشحالین لبشی چلوچواری خوان نویی کتیبی چشتی مجاوری هجاری مکوریانی حتی نولاتن فرمون هوری بن حجر امکریانی بر دوام ابیل لسیرانو یژانی خوئی لوکاتی کلا برلین دبیتو لسفارتي سوریه ماونتو نضله سفیر سوریه جریکتریش سرو 20 مارچ داینه چن روز بو هر دیگو دو جارم نو سیوا جوابی شامم بو نه حتو تو تنانت قلت في ترسم خاليد باغ داشت بويتية چند من بانجي نام باري سياسي کرد دا چهو شام برلو بچهو مالا خود بچو وزارتي دروا بزان بو جواب نامي اوانيا ننردوا نام بر بوسبه اواره حاتوا یارده امه قبول کرابو بسفيري قلت پاکتا کانت هشتا حل نبچرابون اگر من چوم خمان ديانوا سفيرو تي امش دولتا من او روزاني بيا کر کارمن خلناو بو. هر کسی که گنم رنگ منده دی، دماغو خالکی جاری وابو هندی درده چون، بالامزور جار ایرانی دبن. یک لو ایرانی نوتیل، کرد لیر زورن، علی قاضی لسفرت. بیا چرا چون که بابیان ازیت دارو، معاشی زور ور دگری. رستورانی که دنججویان هه لبن، کردی زوری بوده باب بابچین کرد پیدا کن، چوی نبن، چوناو چون بو لپولیسی که رهنمایمان پرسی. رستورانی دنججویان. بانگی پولیسی که دی کل ها تجیگی خوی پیش من کود در دخیقه دوائی لکولان اک رستورانی نشانده نوگر راو سر کودین لاوی که فارسمان دی کرماشانی هنو کردی عربی زورن لپشتو سر اکی کچالم دی و تم آی دیت موا او استاد شهابه استاد شهاب مدیر مدرسه بو له مدرسه فیلی بغدای حتی بو پزیشکی دخوین جمعیک من دقل خواردو همو روش ب او شاره گرماوی لیبو وک گراوی ولاتی خومن بلام هموی چاوا چاواو شیره شیره کرابو چوین لیست یکیان دایینه با گری فلان با خروی حسن، فیسار با آصاب فلان نمرا زبیحی من آوی لش کم دوی وتم من آصابن تک چوا دموی تو زگ آقل تر بم دو نمرا من نوسی پولا کم اندا. چاو مالی بو هر لیک شیره دو لیوانیان بو تکردین دوی اوی کبیرلین من جهش تبو پشت چوارده راجش بعد گودزبرگ من بسواری قطر به جهش بر رج دریاچه کانی ناآسیز داغ یشتی نمیلن لبان کی ناآسگا پولی آلمانی من به ایتالی قراریوا پولا وردکانی نویست ادی چیپ کن اوم ایوا زمان دزدنن بسون لشونه بیگار نوا میان بانک نه وی خده وی با فریندی اوم باشه کم دنیا بزنم چند بی چومه بر پول نشاندو به انګلیزیه شقو شرکم شتیکم بود کبره ل جاتی هر ملک 120 لیر ایتالی دامي دسی بر ریبون سینه مزبیحوتيان او 33 بره خوم گنجان نخیر جناب تن قانونزان بنا بانک یان فریدن اوش مغوریاوا شول جنوا ماينوا لبین میلان او جنوا قطر وستا بو زورم تینو بو دبو بناور شال ریشال ریشال خطی اسنده به اوبر بچم نوشا بیگ بخوامو و ناوکاوتم معمولا کارایی کردم دیار بوده ای کد لیو راوستم ممنوع راستم بکردي وتم عادی لکه لسرگوري بابت بريم اشاره ده کبرو قیناکا جوريکمان لعوتيلك پيدا کرد سینم ملي لفینگ فینگ ن وتم دایک مگری خوشد بيو نخوشد به هر آويا دوبراو خوشکيک اتولند رجوريک دنبنو کسیش بايلي نبته و ملي لپيكنن ن بیا نی چوی نصر کشتی ذبیحی هر لیم دروانیو بزيدیته بوتم چییا ملا حبیج جنبون بو خون کریو تو نیته باجیش بی کشتی کمن نو لی دیابو یونانی بو بلیتم درجه دو بو تختي من دو طبقه لسل یک بو شقه هر ایجنی یونانی او ایتالی میش کی سری د بردین بو چولگنن چش زمان لکر ناکوت ذبیحی ملا اوه درجه دونیه درجه گوو بله، خواردن من لسلانی گشته بود، زور بج بود، راجی دوم تازه توهال دهد. دیتم زبیهی لسربنی گشته چهایی سرود درپری وا. دلیپ زنوا شر شاقه که لوله دت لیت وا. سرگیجه بحری گرت وا. وتم بخو، سگم تیاری اندن. وتم نخر حالی شر نانی نخورد. وتم بشم شو تید بابینم. وتم کوه عدنی چو ما ساتی شش یونانی کان ترکیه ځانن لته شوتی کې ګورم کنه بوتي ملا ناخوم و تم او چاتر لبرچاوی او قرتم لبره تا دورش سرګی جبرینه ده بیانیان کبره کې خاولی حمام سپی بکلاو دبر لسرمیزنه خوردن ده ته برن برمن جربوده بو لا سای پادشاه مراکش پکته سفیری مراکشه بو سوریه دچه عربی نازنه چند کلمه کې کونی ملا نه پل خور دیوه بندونه تفیر عربی قصه کردن بی بزمیک من با ساز بو مپرسه جنیوی کردیم با تیکل با عربی دا کرد هر دیگوت انشاءالله تنانت جاره گوتم راسک بقونگم گوتی انشاءالله دستمنالکی شلو سقطی آتینی دگل ما مستاکین حتبون سیرانو گرن یکی کن توزک ترکی شقو لقی دا گوت لباتی ها آ دیگوت خیخی بو بوینه هوال دی فلان شد به ترکی چیا من زمان یونانی کند زنم. دیود وقت چی؟ و تم ترسه مامی خود. ساعت یک من دو دبو ما دچوالی ماموستاکی. دیود پروفیسور تسکلو گریک؟ اویش دیود نا. دهاتوه. دیود نا گریک. درس یکی پیدا گود. پیکنین من سازدکل. بیانی یک سری دریم دکرد لنا خافل یک یا خرا. بايونانی لجاتی روش خوشه با عربی یعنی هیگو. وتم یه خررو نیو. حوالا کنم بتویم طول حوالو آخری لکر دیا و. له وقت لمن. بدنت یه عربیو دودنک اسپانی دلیه. عربی حلبم. سه سالم عمره. سه ساله لکارا کاسم. پازده هزار دلارم پیدا کردو. عربیم لبیر چوته و. تو خو بخیری خوتن فیر عربیم کنوا. سی سی منج وتم سی سیل جن. بسیر سال زمانی بیست و سالی دایکو بابد لبیر بیر بردوتا چون بششوش و حوروش فیرد بیا و لپول پیدا کردن وزیرک لزمان دا وادبنگ دا دایود سی سی سهیچ داگل یونانی که آتینی پیرپیوک بوین آشنا و تیتو ناوش چیه؟ زبیه و, و تیناو حاج عبد الرحمن به ترکی قسمانده کل لیکی دهالان بز میوه خوش نابه قدر یک أري حيواني كي زورم فيجوانا عكسكين بوبنيرا وتم كام حيوان نا إلاج دستي لجيغي غوية وحالي ناو لقاندي وتم ها إشك وتي بالي بالي ديت توا وتم بسر چهو شكلي خودو بابد بودنيرم سجاري قد خاج عبد الرحمن لبيرد ناچه لبندري پيريه اتين دابازين وتيان هش ساعت کشتي ناروا لأوتوبوس يكمن پرسي اتينه وتي بالي اتينه چوین او شار دوائی بلیتی تازیان کرد که دگره توا، یخی بلیت برام کرد. به ترکی دلم کو اتینا، ترکی نازانی لکول کابره کرد مو، قطاری برقی نشان دین، که به حسانی چوین او شاری آتن، این او قطاری برقی دا، یک با کمانچه احانگی که لیه دا، پیاوی سرخوش کرد، بیست درخمم دا کلاوکی هاویشت، زبیحی و تی، والله وای اغا گویوی نخوارد او میوزیکا پتریشی دینا وک عاشق یک چند سال لیاری دور کوت بیو لپر چاوی پیپ کوی حرگشک بو او خی بروانم او همو میشه نازداره لسر دوکانی با قالان حلوائی بشاق اندکن با هزاران میش پیک و دفرین شکر لبیمیشی میشه آلمان رزگر میشی میشه آتن بوانی دیمشق و بغدالی دی بر لهمو شد باغلاوی که استمبولی ما نوشی یان کرد سی خواردن دروکردنی دو خان دیمشقی و بیردی نوا، بالامهموشت اون ده هزار بونه بتوان. سینم خان کراسی کریو دیاری بودایی، زبیحی گرفانی پرکر لپاکت اجگاره. من سبیلهی با چنچر فنجرم با دوازده درخ مکری، کابرک دستی برایم دبرده شخمایی با خورای دامه. او سبیله ل دیمشق با پنجالی ربو، کپتر ل دکاد تر دکود. چون سری اکروپول براستی پیاو سری لشهرستانیتو هنری چوار ساله یونان گیرده بی. لسر کشتی وکیلی که دادگوستاری عربی عراقی من بو به عشنا بسی یونان نیده دیوید کوره او اتینیانه اونده کرن نبیتوه. من لرستوران داوی هلکه اکم مریشکم بودینن. و تم چون؟ و تی لکه غز اکسی مریشکم کشه دم بگرسون. و تم دی دی جنابی ماموسته. اكسي يالكش دلابن مرشقكك يشعو إشارات دل يدا وتيجا اميبوشيه او كره نابي بزاني منشمدوه وتمبالي كري سيري لدنيا داهيه لسر کشتی سرود کم دروس کرده بو لسر وزنی. ام ججنی سال تازه نوروز زهات و سربندکی اما بو. رویم حتا پلیز نرو لولاگ راما و نیهیشت حرم پراغی شوعی لشاما و. شش باید بو باسی او جیان گواوی دکرد کلاو بین دار رامان بوار. من داندانم دخونده و سینم و زبیحی کورز بون. سربندکی بد بداخوا هر سی بایدیم لبیرما و اوشتی کلاو مثلا. برلین دو شکیل هوا گوشت براسی پیس او دستیناو قطارو بپیوا سرو قتیس دیدی بخوی و فینفو لریگو دزبرگوا مالی سفیر و جوتا لسرت تخت ورگوا میلان و جنوا و لدیک روتو رجالو سیس لبریکا نیدریک شول دریادا دیمنی اگر پرژینی سترومپولی بلا موزور جوانو تماشایبو کلااتین وریکوتين فتا سیکمن پینبو کشتی لبندری اسکندریه راوسته خلق کی زور حاتبونا بندرګه لسربان و سینن دستی بو کابرای کی زلامی سربیا توکی زگزل راداشت وتی او اپو حلمی خو مانه اپو حلمی اپو حلمی اپو اوری دایو دای بزاندین بر دیني رستورانی کی دن بحر بیتو نخوش اونده جمبری قرژال بحری و آبجوی دینه حل مساین سینم تلگرافی دایکی کرد کپولی تاکسی من پینماوا لبندری بیروت و بینناو شر بگو منم نورو جو هشت شو لبحر دابوین نوی جیخوت نانگیشتی نوا بندری بیروت تایکی سخت مابو روشن خانم به تاکسی اکوا چاون ورمان بو. راست بر دینیا و شامو امن لنوانده کرد من نال نال، لشام قدریجان شاعر دیتمی، پیم پیکانی، گوتی تو زبیحی هر مل خطر دنین، کوا چی کرد، لو زور پست بوم، بالام جا کم نداوا، پاش سی روش برو مال حتموا، گیم میوانی اوتیل یرموگ بوم که خوانکی مجید آغا کرده که خلکی افرین بو، محمود فقی محمد همواندیش لوی بو که باسی کرده بدل سوزیه کرد. لگشتی که استمبول گره بواوا، که دوائی حوال کسی بو بجاشت لسلیمانی. او هموانده بو حوال کسیز بو که پیشمرگه لنوشارده تیروارین کرد. چشتنگو سالونی اوتیل دانشت بوم شتیکم دخونده با، او سعیده باسم کرد که منو سعیده جگرخوه نیگران حتا جورو لولاوه دانیشت و تی هجار دگل خالید بگداشت چونی او نیهیشت با مراد بگیوانی ها و تم منی اواری بکس هیچ هنر نیه گلتی خود بمن که کاریک بو بوی چوم سری نگرد خطاش لکس نیه ویزه من بو. پی و تم پی تو وایا گلتت پی اکم و تم بله قادر جانیش دام لیدام کرسی یکه هینا برانبر بران موتی تايستا سال بو ده هزار لیرا کمتر بربوی حزب شعیب کم لاقي کم دخمه شوي د که خالد بغداد شوه چب زنه چون ابروی خو یو سگله کی تو چوب له سر کرد و جواب به اگر یم ویزدان من بی د به او من دا چاو بیو دوست و دژمنی خومن بناسین هات مو وتر بس بیو کروشمم کردو دکتور نافیز برا زازا لپاش شرشی شخصاید لطرکیه و آواری سوریا بو بو لقامش لیه پزیشکی دکرد هر کل دیکی گوندی و فقیر بچوالای بو درمانشی بودکره و براستی زور به بهر بو جرائه و جاریک چومه گوندی که گوتیان نخوشی فقیر فقیری لیه و جوانه کا قطوی شکولاتشن بوبرد دایی که گوتی کری من رابا دکتور جگلیتی بو هنوی دکتور جگلیتی بو هنوی هو گوتی هو. او دلم ناچه پیوازان دلین جوکلات بخو گتم حقی ها منیش پیوازم پیل جوکلیت پی خوشتره شرک لقامشلی میوان حاجی میرزا بوم احمد آغا کی آغا یکونافسر عثمانی زور قصخوشیش میوان بو شو جگه ان لبرهیوان براخستین و زور درن نوستین تواو چاوم گرم نکرده بو بزیره چوار میکروفونی مزگوت راپریم. پاریم احمد آغا دانشته بو جگریده کشه و تی باچ مالمله گوندک بو مچویریمز گوت سید بو کریکی ابو کولو لیبر دکرد هرله ایواره و یکبین دیزران ته بیانی جیران یک مادوتی توپ چوی کی دنیا دیدی لبر ذره کری سید خوم له حرامه چارک بکا دل سید یش نهشه و تن بتزیوه سری شاو هندګرونی کرے بخنه و پونگی نیره کروه حقت نبه بیانی زو سید هات وتی احمد آغا کرا کمای جیان ما دنگی نوساوا دخوی دنوسی بزاره لپر نوسی اکی دیو پشی مانده چم لیه دکی؟ و تیپیم متوا مام سید سالی للای قرسو بایزیدن کران توشی و نخوشی بون قرانیان کرد اوی ام دیه بون یرا کردست نادا ما کریگ بکرو اما بفروشتان تو پیوا ایتر خلکی دیم لزر رای کر نجاد دا. پنجا کسی اک لکردشی و اکانی جزیره سرو ششصد لیران ده دگل دا کاروان خرابونو چوبونه موسکو، هر روژه حوال لماسکو قصیان بکرده بو بود، فرمانی حوالی خالیده، هیچ کس نبی بلی کردم، دا بی ایوش برگی عربی با و کراسی شوار رو دبرکنو بلین عربی سوریه، هرکس خلاف بکا دریدکن، اوانک اگر رابونو بطالی و قلسیوه، گلیان لحزب ده کرد که خبری سفرک زبیحو منی شنزانی بو گلی بن لیوان تقیبو بو بوهره و لومی با عشقره حزبیش وک زوربه حزب شوئه کانی تر له هر کسی گلی ببیستای کلیش جاسوسی پیوه دنو سندو دیوید پیوی استعماره دولاری دباخل داید دسکره با پا کردنوی حزب لاندامانی گل کر زوریان در کرد تنانت اراکیلا ارمانیا قربسراکش و لو دشته دا راویان ل شعیان دا بشی هر بیان ګټبان دو لی اساندنو تری زگیان په لاقه دا کردن ل دیحات نان نان ادانه خلاصه بو راو برس موکریانی عزیز و خوشویست لیر دا حتی نکو تایی بشی چلوچواری خوین نوی کتبی چشتی مکریانی تا بشی کتر همو لیکتن بجین بشادی.